اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر افزون طلبی و تفاخر شما را به خود مشغول داشته و از خدا قافل نموده تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید و قبور مردگان خود را برش و به آن افتخار کردید سوف تعلمون این نیست به زودی خواهید دانست ثم سوف تعلمون. باز چنان نیست به زودی خواهید دانست لا دو نیست که شما خیال میکن اگر شما علم اليقین به آخرت داشتید افزون طوی شما را از خدا نمیکرد ل تا قطعا شما جهنم را خواهید دید ثملت رونها عين اليقين. سپس آن را به عین الیقین خواهید دید ثم لتسألن عن سپس در آن روز همه شما از نعمت هایی که داشته اید باز پرسی خواهید شد